الحمدالله و عقل الله و الله اللہ و عنا سلیل و و محسونین الله مجمعین الله که یا ارحمد واخی شد که ما به روایات اولینا و از کتاب وسائل اون حادیث خوندیم حالا از کتاب جامع احادیث اون مقداری که ایشون به اصطلاح وسائل نقل نکردی اونم خونده بشه در کتاب جامع احادیث از کردیم مرموان بردیدیم حالا شو همین آیاتی رو که اول هست بیارن از کردم در کتب مجامع حدیثی ما مثل کافی یا فرسونی تحریب استفساد تقیید آیاس رو نبوده در خود بخاری در جمله از ابواب آیاس رو داره به سنگی بخاری معروف اون آیاس رو داره اما در کتب ما نیست متعارف کتب ما نبوده این مجامعه اولیه ما مجامع متاخره ما توی بهار داره وسائل نبوده سا بسار قدسان ناصره در تنظیم ابواب اصلاح حدیثی که فرموند آیات مناسب رو نیموند بعد خبالی توی باب روایتی باشه که در روایت آیه زید شده ایشون اغرده. اما توی اول باب در ابتدای باب ایشون متعرض روایات نشده آی بروجیه هم همین اشخال داشتن ولیذا سریع کردن در جامعه احادیث شبیه بهار عمل رو کنن از بهار غیر از این که آیات رو اغرده از هم قالما بعلهشان یه مقدار مختلاوی تفسیر میاره مصدر از تفسیر بیضاوی از تفسیر بیضاوی زیادند. تفسیر خوبی است، تفسیر بیضاوی به را خیلی خوشوذه و خیلی عالمانه نوشته شده، خیلی تفسیر خوبی مقدار زیادی از تفسیر بیضاوی، یعنی از کتب غیر میاره ایشان. گوی از تفسیر فخر رازی را میکنه. اگر بنا بشه دهار متمحل بشه در آیات و خیلی حجمش چند بشه. دیانات بهار بعضی از‌ها خیلی زیاده. اگر کتاب بهار، به همین سبک بهار خلاصین، و این بعضی کلاوزات ها تنظیم بشه خیلی خوبه. مجموعه آیاتی رو که مرحوم آیورو جاز، این آرزای از کلنجز بعد از مرحوم ازمی اخیراً تنظیم شده. البته مجموعه آیاتی در این کتاب سفر شده به مناسبت ورود این آیات در روایات. مثلا یکیش حالا الله و تعالی که صورت این اسراء ولا تقفه که بیه علمون این معلوم به توی وقت جنا نداره این نستم اول بسر هر یعنی آدم حقید موسیقی گوش کنه مو توی دروغم گوش کنه رفتی به عنوان موسیقی نداره بله در بعضی از روایات این ذکر شده نه به عنوان موسیقی به شخصی گوش می‌کرده کرده حضرت می که این اول آیه دیگه که ایشون داره و ما خلقن از تمامه و ارزام بینامه لاعبی لبراً نتخذ لحوه لتخذناه من لدونه که لحب نداریم ما بل لحب و بل حب در الباطل فی از مهو فی اداهو به ظاهر تمثب شد توی آیه ذکر شده به با عنوان باب غنا و بعد این آیه رفت به غنا نداره عنوان لحب خداونده متعال در نظام تکلیمی لحبی وجود نداره این هم آیه دوم که ایشون رو آورده آیه سبون فجتن برس نونال افران وشتن بو قومل زور بیدین آیه در روایت ما زیاد تمثل شده در اهل سنت فعلا ندیده مطمئن احتمال هم داشته باشه آیه شماه چهار ولدین لایشوندون زور به ادامه رو به لغه من رو کراما این آیه هم در چند تا از روایت ما تمثل شده ان شاء الله عرض و در روایات اهل سنت هم بعضیشون اینو آورده. خصوصا اضافه رو به لهر مرو کرامان یعنی مدارس فقهی. این هم خاص اما مشهور اهل سنت نیست. آیه دیگه آیه سوره لقمانه و به در ناس ما 10 و حدیث ليضل عن سبيل الله به غیر علم و يتخذ ها غزو و اولئک لهم عذاب مهی به این آیه زیاد تمثب شده یعنی عمد آیه ای که در کتاب احرس و نظر به رنا بشتم همینه در کتاب جناب قرطبی خوب کتابی تفسیر قرطبی انصافر بسیار تفسیر خوبیه و اصلا تفسیر نید جنبه فقی داره انصافر خیلی کتاب فقی خوبیه شاید ما برام کتاب دیگه بکنم شاید یه مرادای بحث غنار از این کتاب به خاطر مقابلش از این کتاب بخ مرد دیماوندو مولدایس مالکیه اما استفات مرد مولدایس اصلا از این منطقه اصطلاحاً نیست اسپانیاه زاد منطقه اروپایی حساب میشه یا به اصطلاح آوای مخاوره و مرد و خوب نوش ایشون پرتغالی می آیاتی که در کتاب راجع به رنابشت تناسق میشه سه تاست در فردا سردم متن اباد چین یکی اینه درند ناز معنی اشتره قهوه حدیث یکی و تبحکون ولا تبکون و انتون صامدون با سین از ابن عباس نمونو کنه به لغت به لغت الهمیت من مطمئن حدش اشتباه بود به لغت الهمیت صامدون این تو غنون بفتی یعنی غیران یکی هم در سوره اسراء که ایشون نیرده این دو آیاد فسان و من این که تا جامل عادیس های آمده اضافه بود فرمایید و استاد زیب من استادت هم به صلته که <تصفح> خدا به شیطان در لحظه می‌فرمایم، این که هر کی رو می‌تونی با صدای خود تحلیل بکن فکر این صوت شیطان همون لباس. و انصافا اگر اون صحبت رو نشون بگذاریم همچین را نمی نمیدونم با بودن از نداشته باشند یا نه، اما احتمال اینکه نه این ایوارگی استاد زیب من استادت من هم به صلته. باقی برگران داشته باشه احتمالش خیلی پرگیه بهتر از درده از آیاتی که در این کتاب جامال احادیس آمده انصافا این آیه دیگه از این آیه به غنا ارتباطش بیشتره که بعدش این شده حالا راجع به آیات صحبتی میشه اما الان چون باید نظر بینه که احادیث اول احادیس رو بخونیم بر یه مقدار هم راجع به آیات و احادیث اهل سنت و نتیجه گیه ارز که از احادیسی که در این باب این بابی که شده از باب 19 من ارز کردم مجموعه روایاتی کهشون در اینجا بروزن یعنی مجموعه روایات کموزیات با با تقدم یکی یعنی من به اون شمارهی رو که ارز کردم به حسب این فهرستیشون ایشون در باب 19 و 23 21 23 و 22 مجموعه روایاتی رو در باب جناب هم ملی اووردن در یک با 52 تا در یک با 20 تا چه دو تا میشه در یک با چه که 19ده تا در یک بار 11ده تا با 1۲ 11 23 تا آیه ایش روایت مجموعاً میشون اووردن رو باوض می کرد خیلی جمع کردن در باقع به صفاح ها. باز هم اونجایی که مروض بحث سنتی استخارج کامل نکرد از موازه که ایشان دارن و در اون کتاب نداره در دعائم هست کردم دعائم کتاب فقه اسماعیلی است اما انصافا مرد ملالی این یک گفته به لحاظ تبره هم موضعین کلینی و صدوقه مفیله برای ماها انصافه چون مرد کلینی برابر معرو 328 یا 29 مفاتش بوده ایشون 361 یا 63 صدوق هم 200-2008 بوده 20 سال و این طرف 30 سال اون طرف تفاوت داره روایات دعائم خیلی ارزش خاص و خودش داره معلوم نیست برای ما ثابت نشه و یک نکته خیلی به نظر من داره اهمیت همچنانی خوب در قصد شیخ توسی کتابی به نام استفسار استفسار در جمع بین اخباره باب تعارض شبیه این رو هم صاحب دائم داره چون ما ای بحث بحثی داریم که روشی رو که شیخ توسی چون روش شیخ توسی در تعارض الجمع و مهمه هم قاعده شیخ توسی الجمع و مهمه کرد این صاحب دائم با اینکه نزدیک 100 سال قبلش شیخ طوسی هم همین مسئله گذاشته رساله حثی نام ایزا البته این رساله خیلی ناقصه خیلی ناقصه ایشون سعی میکنه جمع بکنه الجمع مهما امکن اولا به درطرف از این جهت خیلی ارزش داره کتاب دائر ارزش های دیگه‌ای هم داره که ان شاءالله اثر داره بحث‌ها ارزش از این که ایشا چیز روایت آورده رو و این روایت در کتاب خسیل سهی بوده، در کتاب نبی عمر بوده، احتمالاً این مساده در اختیار ایشان بوده. و دقیقه، انصافاً کتاب دعائم خیلی فواید حدیثی خوبی داره. که من ایشان در خلال همین بحث اینجا هم او اشاره خواهم کرد. نیشه الله تعالی. بله. بعد از موایاتی که ایشون داره که در اون کتاب نیست حدیث شماره سه زید و نرسی یا نرسیفی اصلیه اصلی هی انعبی عبدالله البته این تعبیر زید و اصلی رو از مستدرک میرسن مرموم مستدرک کتاب رو شنوان زید نرسی یا زید زرار انعبی عبدالله قابشتن به قول از اون قاله على جناب و اینم جمعیه لاده که لفی شغله هست کردم مجموعه ای از اصول در اختیار محوم مستدرک بوده که در, در تندهی همهش به نه به است یک اشکال اشخالش... یک اشکال دیگم در خود زید نفسی هست که یک وجود خارجی دار یا چون اینجا از آن ما سیدی بر ما سر فعلا من وارد این بحث نویشم از جمله روایاتی که ایشان آوردن از کتاب امال الله علی شماره 6 روایت ابن عباس و ابن مسعود فی تفسیر قولی تالا قول تعالی وشر القول زور و قول یمن الناس برای یک دلیل لهو الحدیث کی در معنی یک دلیل لهو الحدیث چرا ثابته؟ از ابن عباس و ابن مسعود که مراد غیراز شد امروز هم یک مقدارش رو بخویم این مصاحبه صابه قول از زورش الان دلیل از جمعه احاضیسی که بیشون در اینجا از داعه نهار کردن جهتر محمد و لدین لا یشهدون از دور قال منذاره که الغناه و شطرنج این الغناه و شطرنج غناه الان در روایت ما هست من تو زهنم میاد که رو در روایت خودمون نگیم منذاره که الغناه و شطرنج بله درسته ریدان در روایتون مبارد شده حالا ایتون جمع کردن در مقام روایت و از روایت در, از در کتاب داعه یک نقطه بسیار مهم داره و اون این که روایتی رو نعمل میکنه و آسان رو میکنه که الان در کتاب‌های ما موجود نیست این هم راجع به این بعد از عباراتی که ایشان نقل میکنه مرموم های این هم از ابداعات و سوارغ بین های بروجردی و کتاب وسائله مرموم های بروجردی معتقد بودن که کتاب مغنه شیخ صدوق متون روایاته لذا فتابای شیخ صدوخ اونها استقراض بوده عوردن و راست هم از انصافا کار خوبی این بارتون رو ببونه اینه ایات بله الله فه اینالله طرح و صاد علیه السلام یعنی شرم رو اسوا جنا این الان در روایات ما نرسیده و بالا با سالا و شنه مقابل از و قال رب ناس و دیشته و له حدیث تفسیر حوال جنا شماره یازده باب نوزده و کناندش رسائل از صادر بشه شرع الاسوال الکنام باشه بقیه از موضع بر قال صادر رسائل اون اونجاهایی که در موضع مثلا مبوعی انعقاد ده نه عمل دریهش کنه آی همه موانع لعق میکنه این تفاوت بین آی و بین کتاب رسائل در کتاب دعائم دارم این محمد این اون در قول الله بناس در یک سیر اول حدیث قال قال ابو جعفر حوض خینا لقد تباعد الله علیه نار یا به این روایت دیگری که به اصطلافیشون در اینجا ده میکنه کنه بله هم مثل الان الان تو ذهنم نیست که از ابو جعفر ما داشته باشیم از ابی عبدالله داریم اما از ابو جعفر الان تو زهنم نیست ایشون نعم بکنه در کتاب کافی که گذشت در کتاب کافی مجموع بیان از سار مفسرین الان مراد به نحبل حدیث علی جنا وقوه قول ابن عباس و ابن مسعود و غیره ما این مطلبیشان درسته وقوه المرگی و علامی جعفر الان علام تو زهنم نیست از نه به یعقوب دل، نه به الرضا، بل از آن داری، بله، شماره باز بدن، شما مجلس, مجلس اهل و کشنا، مجلس و داین الله بر له اهله ولی ما خلاصالد، ما خلاصال الله تعلق، ولی ناآق یورس نفاق و یا این شبیه این کار در صدوق هم شده خوب دقیق کنید من فکر میکنم این چند تاره باید. تا روایت هست همه رو خوش ده همونده خوب بود از نظر در هر کدوم رو جدا میکرد هر کدوم می یک شماره بشید شینا سنده هی مختلف داره از غنا شبرال اصفاد یکی از غنا اخبت و ما خلق الله یکی از غنا یوروس نفاق یا اش نفا و نفاق یکی و یا عقد من مرغوم قصه رواندی به نظر یعنی این نفتر رو خوب دکتر به نظر دا کتاب دائم ولی این یوچ چاپ می شود. هر کدوم میشه یکی. این تو فردی هم آمده این اشتباه تو فردی هم جای در فردی شده من الان نمیخوام واردش بشم. مرغوم قصه رواندی در لقب هم سطون دعای با الله های لیمیومتیامر پنجویش مفنی. ما در کتاب به اصطلاح جه و دعائم. در, جه... در سرکونی هم آمده در جهتر یاد به اصنار یا حلیه غیبی طالب قال طرف تا افتن منوری اسرائیل لیلن عذاب ها. اینجوری بخوری فعص بهو فقط مثلا فقط و عربت اصنار عبتن ناوین طبالین و مخنین و مبتکرین و آکره و و آکره تر این حدیث به محطن دیگرش رو کتابا وسائل نرکرده بود اما این مرز که به امیرمون نسبت داده میشه مرز کردم موزن اونچی که در جعفل ایراد هست در کتاب سپونی هم بوده اما الان دست ما نرسیده این رو در کتاب مرحوم احمد روی جعفل چیست؟ بشه چند بار بخش اگر چون از ترمه معاصر صدوق کتابی داره چند کتاب داره تازگیر به دیفن چه المسلطنات داره الغایات داره العروس داره چه آمه داره حدستان حد و القاسون علیه علوی نمی شده این اما احتمالاً از سادات قوم بوده حدستان حد محمد ابن عبد الله. این محمد ابن عبد الله محمد بن جعفر الاسدی ار رازی ان سهل ابن زیاد که معروفه ان نوفلی ان سکونی اصده ما یه داریم که سهل ابن زیاد از نوفلی نرمی میکنه. چون نوفلی اواخره او در ری آمده بود همون نسخه سکونیه این معنیش چیه؟ معنیش این که این زبایت سکونی را اصحاب ما حضرت کردن من این توضیحات رو چند بار عرض کردم اصحاب ما در میشن درستان واضح نیست برای ما یعنی از زمان کلینی یک کمی هم قبل از کلینی مثل سفار این ها از زمان کلینی و صدوق و محوم شیخ توسی روایات سکونی در بین اصحاب موجوده اما مقداری از کتاب رو هست کرد مثل هم یکی نیستن قال قال رسول الله طرق سایفن نمیدادی اصلاحیم طرق اونی که در شب میاد حادثه که در شب لازم میشه تمره در کتاب دائم هم داره وقال علیون از که برسابه هم کتاب یاد در اختیار سابه داره هم کتاب سکونی ظاهران یکی از این دو کتاب ایشون نه هم این هم راجبه بعده این روایت روایت شماره به اصطلاح شش یه است که حسین فعی میکنه کنه نمیشه در دائم هم وجود به برشتی گفت هم این چیزا سر واسائل میواده. بحث کردیم کناراً میرواد، شواهد قطعی ما حاکی که کی های مشهوری از اصحاب بزرگ و تواریخی مثل محمود نوری عمر در اختیار صاحب داره میده. با اینکه ایشون مصادری داشته که ما نداریم. بلکه از مسادری صحبت می‌کنه که اسمش هم ما نداریم. نمی‌دونیم چی اساس این خبرش شده. و را حالا ان شاءالله چه خاصی اونجا عرض می‌مونه. در اینجا خیلی در سفر در کتاب دائمه علمی جعفر سلام الله علیه القنایون بتدفق فرید گرد کما یوم بتنخل و از طل طل اون اول خرما رو بساش خورمار. در روایت دیگه هم داره از سیرانبر هم شده در عبادی داری که القنایون بتدفق فرید گرد کما یوم ما البغل بغل به این اینه داره غیر از اینم داره مصدور دیگه هم داره کتاب کافی حساب اینا گذار اخبار قالن نبی صلی الله علیه و علیه اوه غناه اوه رویت نا زناه افرد خیلی عجیبه رویه مثل همون بستن برای چشم زخم ها یعنی غناه منچه این میشه که انسان آماده بشه برای غناه نستجی الله. این هم روایت دیگری که به اصلاح در اون کتاب این آخر فرد محمد شو الاله الغنا فوال للسائل وهي حق الى الله الباته اینو ما داشتیم اما اینجا مستقیم از امام صادق نما، اونی که گذاشتیم از امام رضا بود که ایشون تعریف می‌کردن بله احتمال داره به خاطر اینکه چون اصف امام رضا بودن ایشون این مطلب رو به اصطلاح به نزد صادق مستقیما اگر صدر به دیلمی هم بود که سالاغرد گفتیم یا حرفی امتی الخسر والغر با در جاومه اخبار مرحوم قومی که تقریبا بااصر فضوغه روا ابو امامه علی نبی مهمترین حدیثی رو که اهل سنت خود دقت میکنن ان شاء الله اصلا میشه در باب غنا و حرمت غنا و شدتش از خود پیغمبر دارن و هر تو تفسیر آیه مبارکه لاهل حدیث از عبی امامه از اشهر و حدیث انده هم انرسول چون اینشانا خواهیم کنم به استثناء عبی امامه یا از صحابه از یا از تابعی دقیق کنید احادیثی که تفسیر لحب الحدیث یا از صحابه یا از تابعی از صحابه و تابعیش به شهر سنت ثابته انرسول الله که محل کلامه انرسول اللهشم مستمع منحسن ده. قد موابعه اون احادیثی که در له و حدیث ها یک همینه روا ابو امامه علی این در احادیث اهل سنت هست ما رفع احد الصوت علینا این اینو در جامعه الاخبار که از علمای قمه نقل کرده اما صاحب مسائل نمی ورده به خاطر اینکه که یا کتاب مشون نیست الاغ اصل اب شیطانین علا برکدی ابروان و عقاب رو الا سدی حتی یوم سک تا در حال این هم هست در تفسیر عیاشی هنجابر این بردن گلشت بله باز در کتاب وسآل علی اینی هم گذاشت قطب راوندی در لبولوبا ابن الله عبور و دومتی من ملاقه حلیمن هفت رسم عبور و نسان همون انلغنا فعصم و ثنا علی این بول یا اعمال نظری نزدیک این مضمون هم گذاشت سنی ها هم دارن ان شاء الله بخود. از روایاتی که ایشون متعرض نشدن اد دعاء اثر محمد قال لا يحل لغير الخمر شرب و سبا و نهاق و تعليم و كفر. این مجموعه در بعض از روایات بود که گذشت از حضرت زهرا (س) ده شده. بعد در ابوالعالی، فی الحديث عن هو الله علی سلام و, و آله نه آن رنال علشرا المقدیان نشود مراجعه کنم من کجای اولیه چون آموزی خیلی کتاب تازه زیفه فوق العاده هم خودش هم فش دیالوم ما میخوریم و قال وجود آمدن من از این و باالعین وجود آمدن من از صوت از که در روایاتی که سونیا از کجا میادن از جور مقدمی نیست در مجموعه روایاتی هم که ما صوت صوپاشش سر آوردن اونجا نیست. در بعض از روالاتی که حرام می‌ده اجر مغناهی داره چرا اجر مغناهی حرام داره؟ اما مناسب منفسان آمده. بعض داره ولی می‌وجب بزند نه یا ولی می‌وجب بزند نه. این‌لاه فن دیاره عدالتم تکل باشه و فی هدایت زمانی باد باشه زنیدن است. اون شونه‌هایی رو که برای بارو برای آب و چیزا دارند و فن عراس که دارنمی از هر و ولم به از که کتاب خیلی ضعیفه در دسمت در دسمت کتابی گرفته فعلا ما تقیی بعد ایشون داره که از دعائم از دعائم محمد النهلی این ما از ما بودش اما از دعائم نحنه شده این رجل از نشیعتی اتا به حال یبن رسول الله برد تلمدینه فنظر تو علاقه جد احرفو ولا احرفو بشه من فکر رو اهل احل ملاهی باشه فیلا جمیع الملاهی این در وقد وقع تو فی امره ما و تو فی مزده وقاله و احسن جوارکم حتی تخرجه من انده هم من انده. فقال یادن رسولا فما طرف یادشم قال هم من غیل غیل طولتی تو تفضل حالا فحرام رو غیل از کنید که که برای قدام و اما ما فلعه ارس و اشباری فلا برسه به این محللی که ایشون داره در اینجاست شبیه این هم از وسائل گذرمش این الان ما رو باید ندارد این رو به ما نرسیده لیکن شبیه بابی بود در که گفت که اگر جایی مقددی رو برای غنابه خره جایز نیست بگیر اما اگر بخره که من اشبوکم یا در مواردی که حلاله به کار می‌کنه اشکال نداره این خطایی صاحب وصایع دقت بکنید ما از چیزی نداریم که اخلاق شرایتی نداریم دقت بکنید اینی که از روایت است که به درد ایشان می‌خوره و این از اون روایت که ما داشتیم که ما داشتیم که علی بن اگه قانونا اینکه اگه جادئی بخری که تذکر رو که به زور و به راعت اشکال نداره جریه معامله این دو تا حدیثی که تدسس شده مش برای جواز شراء مغنیه البته به شرطی که انسان در حرام به کارش بره خوب دقت کن انصافا هر دو حدیث ضعیف و فی ذاته و طبق قاعده اون معامله باطله طبق قاعده اینطوره از کردیم اقراض و مقاصد انسان در بی تأثیر نمی کنه شما برید شراب بخیرین که بعد رو بمیزین اون معامله باطله شراب برای نابودی برای اعدام شراب معامله باطله فرم نمی کنه اگر مراده از شراع مغنیه اینه که به ازای صفت غنا پول بده اون پول حرامه اگر سازجه تبدیل رو اتنه که اشتراها علا انها سازجه مثل این کلی در حال عادی 5 دینار دیش به خاطر بهنا ده هزار دی. اگر ده هزار دیال بهخبربه رو برای م باششه بااصل بود این روایت کافی نیست. و اگر بخره 5 دی کهمت خود ککن اون گاه این ت وارد و سروق مجموعه ای خب یه مقداد ایشون از اون سطح ۲۳ تا 23 بله، یه مداد روث دیگه اونورده که ت آن مراجعه افرادیمون درسید بابه بیز. تحریم کسب المهندیه که خودیم عنوانش در کتاب و خودیم در کتاب موغن اداره و کتاب فقر رزا معلم اند کسب المهندیه حرام و از ظاهر این روایت این است که مطلقاً حرامه استثناء بر داره و توضیحات شدهش دیگه تکرار نمیداره در کتاب پوسر آوردی قال رسول الله لا به المغنيات ولا و ثمنهن حرام بود اینو دارن اهل سنت هم دارن رسول الله که علی عمه اسمع نش از حوالی ضرب کرده که خب حالا چرا رساله می‌خونیم و ازشون مراجعه این به این قسمت در باب 22 21 تحریم استعمال چیز ملاحی هست کردم دیوز هست کردم کتاب کافی از کتاب سرکونی این ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله این ها کنم این زرف زرف رفس و المزمار و ول کوبات و کبران این کبران کنجور که دیوز اشاره شده هست کردم کرارن ما ادهی احادیث منصوب به همین رو ممنونید نوشته ها منصوب به همین رو ممنونید دارید چی از در زمان خود ایشان که برنابی ایشان منصوبه از کنم احتمال میدیم که بعضیاش مشترک باشه. یکیش ای مثلا این کتاب سکونید کنم همین رو ممنونید یکیم کتاب جهفریاد به اصنابی هم علیه نرمیت ولی کنم دقیقی جهفریاد یا همون سکونید یا بالاخره با هم خیلی نزدیک قال قال رسولان خیلی عجیبه خیلی عجیبه به جوی زفت میده منوشون نسخه کاملا اختلاف داشته و نزمار خیلی عجیبه شاید زفت همه یه که انسان با خودش مثلا برا خودش قناب بخونه آواز بخونه موسیقی بخونه و کبریات این ظاهر بیدید کبریات به کوبات کبریات و کبوبات رو کوبا اونجا کبرات بوده هستنم برای دارم احتمال کنارات باشه نه این باشه نه باشه کبرات هم نرد شده کبریات هم نرد شده تو مهندل فارسوش چی میگن کنار و کبریات این هم یک نوع به اصطلاح آلات موسیقی بوده که مثلا میدنن برای خاندن و این هم شبیه درمان نینهی نرده شبیه بوده. اینا این هم گفته شده یه نوع تبله محسوس مجالس رخص بوده نه تبله بزرگ تبله بزرگ مال جنگ مجالس رخص حالا پس یک نسخه در کتاب کافی به ما رسیده یه نسخه در کتاب جرفری ها یه نسخه تو داعه نه از رسول الله قال انها این عبارت دعایم با جهتریات نزید کرد از کهیم هم جهتریات هم سکونی در اختیار دعایم بوده انها و انها امتی انزخن نمیشد که برای نسخه خیلی و مدوار و هم کوبار و کنارات اینجا کنارات داره اون شما حدیث والدی بوده که متاسفانه به اختلاف نسخه پنده برد در کتاب ارماده در حدیث ان رسول الله نها انه ضرب به دفعه و رقصه دفع و انه ضرب کله و انه حضوریه و استماع استماعه و نمی یدیوجه ضرب و دف انلا فل املاک املاک اینه عروسی تزدیج و دخول به شرط انتکونه تو این رو ما جایی ندیدیم یه از عبادی میاد که این حرفای بی اساس رو بده ولا تد خلاه هنده این نباته دید. قطعا این نقل مضمون است و چند تحدیثی برامیشته خود کتاب رو من که خیغارت زهر شده در کتاب نوب لبا و لباب از خیغمت نقا اینالله حرمت ده به جای زفن و زم رو اینا دف و مزامیر و مذابی رمایو العبوبه. باز در کتاب مسترک انزدهی اندومه نوهینا ان سمتین احمدی فاجره صوت عند المصيبه ما خنش و يا شكل و صوت عند الذمه این حدیث بسیار معروفی در پیش ارسلان جابر بن عبد رسول الله ان شاء در کتاب عواری هم از جابر نرم کرده این ان شاء الله بر میتونه در خود کتب عبد الصمد شیخ ابو الفتوفی تفسیری اینی که از روالات بسیار مهم در واقع این اعصابیده متعجب دارم اون وقتی حتی در عجایب اج... کار این اهل سنت ان جعفر محمد بن ابي حم رسول الله نعت از یعراسیه اهل سنت ما نداره اینا عجایب شه ما الان اون نداره جعفر محمد واسه در کتب اهل سنت ان جعفر بن محمد علی عدی خان ام و علی و معروف معلومه بین اهل الصلاه و آسانه فهمیدن احمدان در احمدین همه را در مصنّة داره. در بعضی از خصوصیات وقتی صحیح اهل الصلاه هستم آمده، این حدیث خیلی حالت به استو شده قال اینا الله تعالی به اسدی و خودن للعالمی و للعالمین و همه را نعمت و مزامیر و معاذات و آثار و اوصان و امور جاری هلا انگاه این آلات المزامیر شراغ آها دی آها سمن اها و تجارتو به ها حرام ولی در طبق این مطلب یک بحث دیگه در کتب احل سنت ها در کتب ایمان هم اون که اگر کسی آلات غنا رو کسر آلات غنا هل هو ضامنون ام لا قا مشعده شو گفت لا یقنه یعنی از ابو حدیف نارگن یقنه یعنی تمسا بیشون به بی این حدیثه امرن یا ام ام هو المزامیر برای محاضر روشن شد و ارز کردیم اگر چیزی در نسان دلیل بیاد که پیغمبر دستور اعدام اعدامش کنید این مناسب است که خیلی فروش هم حرام باشه بله اگر گفت مثلا در انافزه آب نخورین لا تشرب ما این معناش نیست که انافزه یه رومبه آها وشرا. اگر نه از فعل خاص باشه این ملازمه با بسلانه بی نداره دقیقی اما اگر نه به این معناه باشه که این چیز نباشه کلن امرانی انهم همه این اصلا نباشه اگر دستور آمد که این نباشه یعنی به اشان واضح هم نداره مالیت هم نداره. نداره روشنش داره این راجع به این حدیث ازدادیشون از قصاله ما اون سؤال منه یه حدیث مفصلی که از امیر فرمودن که در اون کب همه گناهشون بخشیده میشه الا کذا این آمده در زیر خدایم از دعائم داره روی نارجب من قال سوئله لحو فی غیر نکار و تلا عليه. این ظاهر نقل موضوع باشه ما چه متن الان نداریم نکاح در غیر نکاح الان نداریم در جامل اخبار قالوا یوشر صاحب طبوری و, يوم و, يوم و, يوم و ما ایده از روایات در تجسم اعمال راج به دف و تنبور داریم و که این نیست راج به تنبور داریم این نیست این در اون کتاب نواصع معروفشون نیست <تصفيق> خیلی خراباده یعنی تحقیقا آدم میتونه این مصور بهش پیدا بکنه تیگه روایت بعدی که از دو... کافی نرده که اگر انسان غیران بکنه حیاء ازش میره ولن بیو با خب من رو در یه رق... مطلب و حقاست حیاءی این رو در دائم هم نرده کرده من این اشاره بون بحثی که من ازگردم در جعفریات و در دائم به اصنادی هم علیه رفع علیه رجلون کسر بربتن فعق فلقون همین که همان ازگرم که زامن نیست در کتاب دارم برم یوجب علم رجل شیعن ازگرمینا با کتاب سکون یکیه این قسمت ها به ما نرسیده الان هر دو کتاب خود قدقر بکنیم علی جعفریان و دعایم هر دو میراث مصری هم تراس مصری صاحب و دایم در محصود اسمایلی و جعفریات در محصود در تکرون زانه شیعه باشید. در کتاب مستدرک از کتاب روزاد کرده از مرحوم سیستدر الدین دشتکی همه رضا علیه السلام قال استماع و اوتار مدر کبائه این الان خرم درش نداریم استماع و از تناس اینه که اون موسیقی بینید ونه دهی چیزیم نگل کنه که هم اعمیرومون اینجا یک لب بود، اینجا یک لب بود دارد، دا لکن لارم یاد بابا تنبور باشه. فهمنده او و کسر در تنبور آن، بعد هدوس فهم این صدای تنبور که میشمری، این مهنه رو میگه، شعر این خوندن شهرمان دکتری مخربا آینه مرازی کرد. دیگه نمیفهمیم چیه این در کتاب فقه زاب و نر وی یا نرگلا، آن نهوم من آبگا فی بیتی او شیعن من الملاهی من المعذفت و شکرنج و اشواهی ارواین یومه فرقباه و غضب من اللاف اماتفی ارواین ماتفاجرن فاسهن معواه و نار و وحس المسیر باز در کتاب جعفریات این چیزی در تبوم این که در اونجا اومده قال تقوم و ساک این ارز کتر است که به خواهی متعدد داریم راجه برشات سایه و قیامت و علاقمون یشهدون من میکنن از میک میان مخلوش و عملون عمل و به دخوف و معاذه این هم راجه این قسمت که از کردیم بعد یک هم از کتاب زهده نرسی امرده از قرار کلمه از قرار رو معلوم از کتاب آمدی امرده وراب عبو فراز وراب عبو فراز هم که خوندیم که عبادی هم داره بله یه رواد دیگه در آخرش شده از کتاب گفت برامدی قاله لعب و بل چعاب و صفیر به نخمام و اکر رواد امسی این چعاب ماله مناسب با قماربازیه رفتی به وقت جنا نزده دقی Oh, I'm going to get them all over here.